امین خلاص نشو میفرمیدی فرض کنم که خب طبیعتاً ماین این ادومه حضرت هویت الله ما رو محکوم میکنیم دیگه کارون دیگه ای نمیشه کرد بله خب در مورد حمله به بلده. سفارت عربستان چی در مشکل گشا وزارت نظری خاصی نداره یعنی والا خب بالاخره مساله این ادومیشن یک جنایت بزرگ و حرکتی بر ضد بشریت بود. ما با به با هر باید از این اقدام ها بگیریم. توضیح کنیم. دیگه. مشکل جان ببین میسن که نگیستی سوال ما. اعدام رو که محکوم کردی هیچ بله میگم نظری وزارت درباره حمله به سفارت و آتش زدنش و اینا چیه اینا؟ مسئله‌ی تشه زدن مشأله خیلی مهمیه خوب خوب. که در هر صورت با محکومیت ادامه حضرت آیت الله نمر ای باید ما رهبری خیش را بر مسلمین جهان نشان بدیم و ثابت کنیم که ایران هیچ وقت از حق خود در این زمینه کوتاه خیلی و... مشکل قبلا کر بودی الان که مختم تاب برداشته بزر اصلا سوالم رو یه جور دیگه مطرح کنیم ما... مشکل اینایی که به سفارت حمله کردن از مرگ این ناراحت حاج دگه حمایت جهونالون در همه حضرت آیت الله مردم دارم میشوزن دیگه ولی خب یه آلم عکس الان از اینا هست که دارن با خنده و شادی از خودشون سلفی میگیرن جلوی سفارت و رو در دیوارش اینا اینا واقعا ناراحت عل مشکل یعنی <مشکل> نه ببینید این لبخنده ها با خنده وجريه به ما سفارش شده که باید حسرت یک اخ رو بر دل دشمنان گذاشت این عزیزونا هم در حالی که دلشان خونه و در درون میگرین دران لبخند میزنن تا دشمنان خوشحال نباشن عجب. پس دلشان خونه اینا بله بله خب پس شما داری تلویهن یعنی تایید میکنی حمله اینا به سفارت عربستان و دیگه مشکل. بله ببینید ادام يعني... حضرت آیت الله نمر یک کاره زشت و خلاف انسانیت بود که برحال روز دامنه قابلین اون رو خواهد کرد نه خیلی و... قبلن ها کرمی بس... شد الان دیگه نویز می بله. مشکل جان من تبریک میگم به شما روش جدید پیشوندن تونو خیلی بله قشن من متقابلا تبریک میگم انشاء الله که در آینده نزدیک به بهترین درجات عالی نو شده بر برکات او عبد اخراط شده. خود خدا رو شکر فکر کنم مشکل دیگه حل شده رسما. بله با تشکر از شما تاپ شبی دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقا این یارو دیگه رد کرده رسما. من گفته باشم از هفته بعد دیگه مشکل بی مشکل. این پسرخالی خودم ما بیکاره میاد اینجا جای کارشناس باش مصاحبه میکنم دیگه. سگشم میارزه به این مشکل. مصاحبه کردیم با برنامه. این یعنی